و به این و اینه خیر و ناصر المؤمنین و, و صلی الله علیه سیدنا محمد اومدیم به آده تاهیرین آده کنم که هفته گذشته یه بحثی داشتیم درباره خبر و اقسام آنها از جهت خبر واحد، خبر متواتر و خاصیت هایی که این بحث داره مثل این که خبر متواتر علماور یقین به آدم میده ولی خبر واحد زنیه و چون خبر واحد زنیه طبعا زن هم یک درجاتی داره ما زن بالا داریم، زن پایین داریم که البته اگر بخواهیم ما به خبر واحد زنی عمل کنیم قاعدتا باید زنش زن معتبر باشه نه زن ضعیف چون دیالا خبر به عمل به زن نامتبر اصلا جایز نیست. و با توجه به این مطلب یه بحثی داشتیم خود خج... حجیت خبر واحد که آیا واقعا حجیت خبر واحد قابل اثبات قابل اثبات نیست؟ و یک آیاتی از قرآن کریم رو مورد بررسی قرار دادیم مثل آیه نبع، آیه نخر، آیه سوال، آیه کتمان علم و جمع بندیش این بود که بلاخره خبر واحد از نظر قاتل دانشمندان اسلامی حجت و حجیت داره که البته منظورم خبر واحد صحیحه یعنی زن معتبر رو ما در خبر واحد صحیح باید رستجو کرد. این بحث یک بحث تکمیلی داره و بحث تکمیلیش اینه که به طور کلی از نظر علما و دانشمندان خبر واحد یا خبر واحد فقهیه یا خبر واحد غیر فقهیه خبر واحد فقهی یعنی اخباری که در زمینه حلال و حرام و تکاریف شرعی وارد شده که اینا در حقیقت تبیین آیات الاحکام قرآن اند اما خبر واحد غیر فقهی خبر واحد غیر فقهی وحدیه غیر فقهی شامله خبر واحد اعتقادی خبر واحد اخلاقی خبر واحد تاریخی خبر واحد تفسیری تقریبا گونه‌های مختلفی از خبر واحد میشه که ما دیگه برحال اینا رو در یک دست قرار میدیم یعنی اخبار واحد از نظر این درس ما تقسیم میشه به خبر واحد فقهی و خبر واحد غیر فقهی خود غیر فقهی شعبه های گوناگونی پیدا خواهد کرد چون الانم ما داریم نقش حدیث رو در علوم مختلف بررسی میکنیم این بس... یک بحث مکملیه من امروز واردش نمیشم میذارم برای عرض کنم یکی دو جلسه ای دیگه صحبت میکنم دلیلشیه دلیلشیم که امروز میخوام راجع به نقش حدیث در علم فق یه مقداری توضیح بدم الان میرسم به سآل شما به قول من طرح تره بحث بکنم نقش حدیث در علم فق میخوام تو صحبت بکنم الان در این که حدیث در حوزه فق خبر واحد خبر در حوزه فق حجت و حجیت داره هیچ کس دیگه تردیدی نداره چون کسی تردید نداره بنابراین ما این بحث رو امروز داریم نقش حدیث رو در علم فق براتون بررسی میکنیم بعد زمانی که میخوایم برسیم به نقش حدیث در علم تاریخ یا نقش حدیث در علم تفسیر این بحثی رو که باید بکنم اونجا براتون کنم که آیا خبر واحد در تمام علوم ارزش واحدی داره یا عرضشهاش متفاوت میشه بنابراین این بحث نقش خبر واحد در علوم گوناگون از جهت حجیت و اعتبار رو میذارم برای آینده امروز میخوام راجع به نخشه خبر واحد در علم فقه با شما سخن میگم حالا شما بفرمایید سالی داشتید چی بود سالیتون هفته هفته هفته آره یعنی در حقیقت من اشاره کردم که بحث هفته گذشته ما یه قسمتش میمونه اون را امروز ترک نمی کنم امروز چون می خواهم به نقش حدیث در فقه صحبت کنم البته شایدم حتی لازم میشه دو جلسه من صحبت کنم چون یه مقداری هم بحث, بحث طولانیه ما این بحث رو هم باید برای شیعه کنیم هم برای عهد سنت کنیم یه مقداری هم شاید بحثش طولانی باشه خب من به عنوان مقدمه یه توضیحات میدم راجع به فقه معنای لغوی معنای اصطلاحی و معنایی که از فقه در قرآن و روایات ما به دست میاریم تا برسیم به علم فقه به معنای اسطلاحیش به معنای اسطلاحیش ابتدای یه مقداری برای که ما بیشتر با مفهوم فقه و علم فقه و جایگاه فقه آشنا بشیم یه توضیحاتی می بعد وارد اصل قضیه میشن اولا کلمه فق معادل علم البته تفاوت های با علم داره ولی کلمه فقه در لغت هم به معنای علم هم به معنای فهم به کار رفته به طوری که ابن منظور که صاحب کتابی به نام لسان العرب ایشون میگوید الفقه العلمو بشیء و الفهمو له فقه عبارت از آگاهی به یک چیز و فهمیدن همون چیه پس فقه در لغت به معنای دانش به معنای فهمیدن و آگاه شدن بعد میگه الفقهو الفطنه فطنه بطاها نه فطنه بطه دو نقطه که به معنی فتنه و آشوبه فطنه یعنی زیرکی زیراکی با حوشی الفقهو الفطنه این معنایی که ابن منظور برای ما ذکر کنیم که یکی دیگر از علمای لغته میگوید که فقه عبارت از دستیابی به دانش پنهان با استفاده از دانش پیدا و مشهود فقه عبارت از دستیابی به دانش پنهان با استفاده از دانش پیدا و مشهود یه توضیحی برای شما بدن ببینید ما یه آیه قرآن رو می خواهیم فقهش کنیم یعنی استفاده می کنیم از یک سری دانشهای پیدا و مشهول مثلا می که در این آیه چهار تا لغت وجود داره بریم به سراغ کتابهای لغت کتابهای لغت الان جزء دانشهای مشهوده دانش های آشکاره می‌ریم معانی این لغات رو از دانش مشهود و پیدا استخراج می‌کنیم. بعد میگیم که این آیه ممکن سبب نزولی داشته باشه می‌ریم به سراغ کتاب های اسباب و نزول تا ببینیم این آیه در اون کتاب ها سبب نزولی دارد یا نه کتاب های سبب نزولم هم جزء دانش های مشهود و آشکار ماست چون علمان نوشتن و در ما قرار دادن بعد میگیم که به نظر میاد که در این آیه یک صنعت بلاغی یا یک تشبیحی هم به کار رفته مثلا فرض کنید او کسیه به منس سماه فیه و رعدون و بر این کاف کاف تشبیحه بعد میریم به کتاب هایی که راجع به امثال قرآن تشبیهات قرآن صحبت کردیم بعد میگیم حالا ببینیم مفسران در طول تاریخ چی گفتن خب حرف های مفسران در تفاسیرشون هست میریم به سراغ حرف های مفسران امروز کسی مثل علامه طباطبایی از تمام این ابزارا استفاده کرده دیگه اصلا ببینیم این آیه در خود قرآن شاهدی داره که میشه تفسیر قرآن به قرآن بریم یک رشته اطلاعاتی رو که جز دانشهایی که فعلا موجوده ما در اطراف یک آیهی گرداوری میکنیم خودون رو هم عقل داریم دیگه خدای تبارک و تالا به خودمام یه قوه تفکر و تدبر و اجتحادی داره دیگه با توجه به این خود ما هم یک عقل داریم یک اجتهادی داریم اینا رو هم که میبینیم اقلا ما قدرت داریم بعض از نظرات مفسران رو نرقده کنیم ثانیه ما قدرت داریم با توجه به این قرائم بگیم معنای واقعی اینایی اینه اینجا اون معنای واقعی که ما با استفاده از علوم گوناگون بهش رسیدیم به قوله ایشون میگه دستیابی به دانش پنهان چون میدونید تفسیرم پرده برداری دیگه پرده برداری از یه معنایی که اون معنا الان هویده ها نیست فاش نیست شما دارید پرده برداری میکنید دستیابی به دانش پنهان با استفاده از دانش پیدا و مشروع حالا اگر من مجاز باشم به این دستیابی به دانش پنهان با استفاده از دانش پیدا و مشهور میگم استمباد یا میگم برداشت یعنی علم، کلمه فق در این چیزی که راغم اسفه ها می نوشته این معادل نوعی استمباده نوعی برداشت در حقیقت از یک کلام کلمه فقه در کاربردهای قرآنی و در کاربردهای روایی مفصل وارد شده در قرآن کریم در برخی از آیات فقه به قلب اسناد پیدا کرده به قلب مثلا درباره ادعی در مقام مزمت میگوید لهم لا لایف قهون بها شما میدونید که کلمه قلب در فرهنگ قرآن کریم که به معنای این فرض کنید قلب جسمی و سنوبری شکل نیست به نظر میاد یه جا کلمه قلب به این معنا استعمال شده ولی در استعمالات قرآن وقتی که قرآن می فرماید اِن نفیزا لِكَ اللَّذِكْرَادِ و کَانَدَهُ قَلْبِ اینجا مرحوم علامه تبا میگن میان من جایی این قلب میذارم عقل در بعض از آیات قلب به معنی عقله به معنی قوه در راکست قوه در به منای اون حوزه وجودی انسان که با کمک اون میتونه بعض از مسائل رو درک بکنه فقه به قلب اسلام پیدو یعنی یک شناخت دلی یک شناخت عمیق وجودی یک شناختی که به وجود انسان به قول معروف این مطلب رو درک کردی با تمام وجود درک کردی اون در که با تمام وجود فقهه چون به قرب اسلام پیدو کرده یعنی یه فهم عادی و معمولی هم نیست یه فهمی که انسان با تارکود وجود خودش از کنم متوجه بشه. این فقه در لغت و در بعض از کاربوردهای دیدیم در روایات گاهی اوقات فقهه معادل حکمت به کار رفته و فقیه معادل با حکیم انوان شده ما یک آیه داریم در قرآن کریم فکر میکنم آیه 266 سوره مبارکه بقره آنجا که میفرماید یعتله حکمت من يشا. و منیه عتل حکمت ها فقط اوتی از غین کفی را و مای از ذکر و اللهقل یکی از اصحاب امام ساده برای سلام سال میکنند که معنای یا عهتل حکمت عملش چیه و وشون میخواد بیشتر با حکمت آشنا بشه که معنای حکمت چیه؟ حالا من قبل از اینکه، حدیث رو برای شما بگم اجمالا برای شما عرض میکنم که حکمت یعنی دانش قطعی دانشی که شک تزلزل ریبه در اون راه نداره دانش قطعی میدونی چرا چون حکمت و محکم هم خانواده هستنه بگیم حکیم یعنی کسی که همه حرفاش محکم محکم یعنی متقن و گاهی هم محکم در بران در برابر متشابه هر به کار رفته آیات و بران یا محکمن یا متشابه آیاتی محکمن که یک معنای سریع و روشن دارند که علما میگن نصوص حتی میگن زواهر نصوص آیاتیه که یک معنا دارد ولا غیر. زواهر آیاتیه که دو دوتا معنا داره ولی ارجهیت یک معنا بر معنای دومش کاملا مبرزه. بین زواهر. بعد مجموع نصوص و زواهر رو میگن محکم. در فهم محکمان ما دچار اشتباه نمیشه. حکیم عبارت از کسیه که حرفاش همه ممکن همه روشنه همه قطعیه و با قاطعیت هم میگه ممکنه ساده حرف بزنه ها ولی محکم با قاطعیت میگه امام خمینی حرف میزدن خیلی هم حرفشون پیچیده نبود مردم کچه و بازارو میفهمیدن خیلی ساده مباحثشون محکم بود چون حکیم بودن چون از یک روح معتقد و با آگاهی تمام این حرف بر میخواست این یک مطلبی اجمالی راجع به حکمت که قرآن می فرماید بلقد آتاینا لغمانا لحکمه یو یو تله حکمته من یشا. اصلا حکمت به چه نوع حرف گفته میشه حکمت در این حدیث که می‌فرمایید یؤت له حکمت تمیشه از امام صادق علیه السلام سوال میکنند که مراد از حکمت چیه حضرت می‌فرماید که ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین ان الحکمه المعرفه و تفقه فی فمن فقه من کم فهوه حکیم هر کس از شما فقاهت را به او حکیم <تصفيق> یعنی در واقع یکی از های فقی حکیم یو عارفه. عارف. عارف یعنی شناسا کسی که به معرفت رسیده فقی کسی که مسائل رو با تمام وجود در کرده اینا یکی از مترادف های حکیم بر اساس این حدیثی که من ارزم کنم خیلیم خب در قرآن کریم و در روایات فرق یک محدوده ای داره در دانشهای اصطلاحی فقه یک محدوده دیگری دارد هم در قرآن و هم در روایات فقه به معنای شناسایی و شناخته و اگر به دین نسبت پیدا بکنه مثلا میگیم که آقا تو فقه در دین داری که فقه در دین بهش میگنتفقق اگر به دین نسبت پیدا بکنه یعنی دینشناسی کامل دینشناسی کامل فقید فقی. در فرهنگ قرآنی یعنی کسی که به طور کامل دینشناس زمان مکان و جهانبینی دین هم, هم دین رو به لحاظ مسائل اعتقادی کاملا میشناسه همدین رو به لحاظ مسائل حلال و حرام خوب میشنسه. همدین رو به لحاظ روابط اجتماعی یعنی رفتاری که یک مسلمان باید در برابر دشمن داشته باشه در برابر دوست داشته باشه در برابر بیتفاوت داشته باشه بالاخره یه بخشی از دین اخلاقش دیگه پیامبر اسلام در فرمودند که این نکده خلق نظیم یعنی میدونست که در برابر کفار چه برخوردی کنه در برابر منافقین در برابر دوستان با چه برخوردی داشته باشه فرقی شاید هفته گذشتم بعدتون گفتم به مناسبتی امروز هم تکرار می‌کنم که وقتی قرآن کریم تشریخ می‌کنه که باید از هر وروحی یه دی برن و تفقه در دین بکنن و بعد برگردن به شهرشون به دیارشون به انتظار قومشون بفرتازن این تفقه دین به معنای این شناسی کامله و وقتی که من میگم راویان فقی در اصحاب صادقین چنین منظوری رو دارم مثلا فرض کنید سوره یک انسان متعالیه هم متکلم خوبی بوده هم عالم به حلال و حرام بوده هم مفسر بوده هم یک الگوی اخلاقی بوده هم یک الگوی معندی بوده معندی در یه روایتی داریم که امام فرمودن که زراره به قدری در حوزه معندیت پیشرفت کرده که اگر زراره در یک قومی حاضر بشود خدا به احترام زراره عذاب نازل نخواهد کرد ملوش این آدم در مسائل اخلاقی در حیطه معنوی و اخلاقی خیلی خودش رو خودش کار کرده دیگه یعنی داره میرسه به مرز یک انسان معصوم فقیهه یعنی فقه های اصحاب عیمه یک چنین ویژگی هایی داشت فقط این نبود که آگاه به حلال و حرال متکردم هم بودن عارف هم بودن. شاید مثلا اگر اون زمان اون رو مقلی پیشرفت میکرد فیلسوف هم در میامدن از کار این تمام حوزه های دینی زمان خودش رو ایشون متخصص بود و ایمام ما خیلی تاکید داشتند که به این معنا مسلمانان فقید باشند مخصوصا جوانان مخصوصا جوانان چون جوانان محض استعدادند به طوری که امام باقر علیه السلام فرمودند که اگر جوانی از جوانان شیعه رو برای من بیارن که در مسیر تفقه نباشه، او رو ادب خواهم کرد عدب امام صادق فرمان تفقه رو دین و الله فانتوم الاعراب در دیر خودتون تفقه کنید و یعنی به شما میشه حکم افراد بیابانی و بددی خب این فقیه بوده در ورنهای اول اما هی که ما جلو میریم علوم تجزیه میشه و علوم که تجزیه میشه یک نامهای اختصاصی به هم میزنه مثلا با گذشت زمان یه حوضه از دین میشه حوزه شناخت احکام و تکالیف شرعی که یک مسلمانی باید انجام بده در شبان روز و نیز آگاهی به حلال و حرام چه چیز حلاله چه چیز حرامه چه چیز مستحباته چه چیز مباحه چه چیز مکروهه یه رشته ای از دین اختصاص میدپدی میکنه البته این رشته از اولم بوده ولی این تخصصا یک ادعی روش کار میکنن و صاحب نظر میشن و مثلا ما در صفت بعضی از صاحبه داریم که میگفتن فلانی اعلم و ناسه بله و وله حرام حتی بعضی از اصحاب بودن که در یکی از دانشهای های حلال و حرام متخصص بودن تازه نه همه دانش های حلال و حرام مثلا در رابطه با زید ابن میگفتن زیدون اعلم و ناسب الفرائز میدونید معنی این عبارت چیه؟ فرائز یعنی چی؟ میراس آفرین آفری فرائز یک استدام تخصصیه ما در جواب افقهی کتاب الفرائز داریم و مقصود کتاب الارسه میگن در اصول پیغمبر زید تو مسائل ارز یادت طولایی داشته زید بن یعنی بعضی از یادتونایی دارن در حلال و حرام مثلا سعید بن مسید اعلم الناس فی الحلال و الحرام حالا بعضی تو یه شعبه خاص از حلال و حرام یادت طولایی داشتن میگن زید بن ثابت فرائض اصطلاحی به معنای مواریسه این یه مقداری اجتناب ناپذیری دیگه با گذشت زمان دانشگاهی تخصصی, تخصصی میشه تخصصی میشه تخصصی میشه دقیقاً معلوم نیست از چه قرنی من فکر می کنم از قرن سوم اله 4 که دیگه فقه یه معنای تخصصی ویژه‌ای پیدا می‌کنه شاید این معنا تو قرن دوم نبوده ولی در قرن سوم و چهارم مذاهب فقهی شکل گرفته مثلا مذهب همبلی مذهب شافعی مذهب مالکی مذهب حنفی خب این مذاهب بعضیاشون در قرن دوم صاحبانش زندگی میکردن ولی شکل گیری و ظهورشون به به قرنهای سبون به بعده اینجا دیگه فقر یک معنای ویژه ای پیدا میکنه و اختصاص بده میکنه به دانش حلال و حرام کسانی که آگاهی به دانش حلال و حرام دارن خب قایدتا یک رشته از احادیث پیامبر یا احادیث امامان شیعه احادیث فقهی هست مثلا احادیثی که در زمین حج وارد شده و ناظر بر مسائل حج احادیثی که درباره نماز وارد شده ناظر به مسائل نمازه مسائل شرعی نماز همین نماز ما دورش اشت حدیث داریم دربارش یکی روایتی که ناظر بر معارف نماز مثلا میگن الصلاه معراج مؤمن نماز مایه اروج مؤمنه این حدیث که فقهی نیست داره ارزش نماز رو به ما میگه اینجز معارف نمازه ولی بعضی از فرض بخارمویت روایات نماز اینا روایت فقهیه مثلا میگه نماز ظهر رو همدو سورش رو آهسته بخون نماز مغرب رو همدو سورش رو بلند بخون اینا دیگه احادیث فقهیه نمازه حجم همینطوره زکات هم همینطوره تازه راجب اناوینی که جز اناوین عبادیم ما یه رشته روایات معرفتی داریم یک رشته روایات به اسطلاف فقهی داریم به معنای خاصی که احکام شرعی ازش در میاد خب حالا ما میخواییم راجب نقش و جایگاه حدیث در فقه با شما صحبت کنیم و بیشترم منظورمون فقه به معنای اصطلاحیه نه فقه به معنای عمومی که عبارت از دینشناسی جامعه بود ببینیم که ارز کنم خدمتتون فقه چه نقش و جایگاهی حدیث چه نقش و جایگاهی در فقه برای این مطلب یه سری میزنیم به کتاب‌های فقهی و یک سری می‌زنیم به تاریخ تحولات فقه تاریخ تحولات فقه این موضوع که می‌خوام بگم هم نسبت به فقه اهل سنت صادقه هم نسبت به فقه شیعه صادقه خوشبختانه هر دو مکتب فقهی شیعه و سنی در این موضوعی که من میخوام بگم اشتراک دارند. اون چیه؟ به نظر دانشمندان علم فقه در تاریخ دو گونه هویت را پشت سر گذاشته علم فقه در طول تاریخ خودش یعنی از قرن دوم زمان ما علم فقر دو, دو گونه هویت را پشت سر داشته. و شاهدش کتابهای های ماهیت علم فقه یک فقه معصور یا فقه روایی دو فقه اجتحار استمید باید یعنی با یه قرنهای از قرنهای اسلام رو میتونیم الان برای شما مثال بزنیم که ماهیت علم فقه یا معصوره یا اصلی. در این دوره فقها در مقام نقل فتوا حدیث میخوندن حدیث تحمیل شنوندگان خودشون میدادن به عبارتی علم فقه و دانش فقه اساسا ماهیتی غیر از حدیث ندارش داری شما میگید آقا نقش حدیث رو در علم فقه برای ما بگو من میگم نقش حدیث رو در از کنم علم فقه برای شما بگم آقا یه ای بوده حدیث یعنی فقه فقه یعنی حدیث اصلا فقه ماهیتی غیر از حدیث نداشته این دوره در اهل سنت برابری میکنه در قرنهای اول تا مثلا چهارم که بعضی از مکتبهای فقهی در قرنهای اول دوم سوم اینا فقهای های اثری بودن یا فقه های روایی بودن که آنه براتونم می در شیعه مسئله فقه معصور یا فقه روائی تا قرن پنجم یعنی زمان شیخ توسی ادامه داشته و از زمان شیخ توسی در حقیقت نوع جدیدی از علم فقه که عبارت از فقه استنباطی و اشتاقیه در شیعه به وجود میاد خب من حالا در ارتباط با شیعه میتونم بگم که تحولات علم فقه شیعی یک فقه معصور دو فقه نیم معصور سه فقه اچهاری استنباط. یعنی حتی بین فقه معصور و فقه اجتهادی استنگاتی ما یه مرحله هم در میتونیم به نام فقه نمیم معصور برای شما ذکر کنیم اما فقه از خدمتون معصور ببینیم کتاب های کافی من لا يحضره الفقهی تحذیب الاحکام الاستفسار اینا مدرکه برای فقه معصور فقه روایی اصلا از اسم کتاب ها هم معلومه. مثلا کتاب من لا يحضره که کتاب شرط اسم کتابش از فقیه و من من لا یهزون فقیه یعنی کل کتاب به مسابه یک فقیه کل کتاب به مسابه یک فقیه برای کسانی که فقیه در اساسشون نیست وقتی کل کتاب به مسابه فقیه کل کتاب میشه یک کتاب فقیه دیگه حالا این کتابی که هست چهار کتاب اصلی یه حدیثشی هست یعنی شما به کتاب منگاه احضار فقیق که مراجعه میکنید خب شرق صدور روایات امام واقع امام صادق رو درباب مسائل شرعی برای شما جمع کرده حدیث چه جایگاهی در علم فرق داره بیهیم آقا حدیث علم فرقیه یه از یعنی این جایگاه بالاتر فرق هم قیافه ی حدیثی داره یعنی در زمان مثلا فرض کنید امام سا... در, زم... در زمان شیخ صدق اگر یه کسی از شیخ صدوق میگفت که آقا آب چه میزان بشه پاک دست است عنوان آب کر اون موقع شیخ صدق یک حدیثی تحلیم مثلا فرض بفرمایید میگفت قال ابو عبدالله صادق الماء اذا بلغ القر لم ينجس شيء اگر که آب به حد قر برسه هیچ چیز دیگه نجسش نمیکنه حدیث تعریف میده در این دوران نقش یک فقی تشخیص حدیث صحیح بوده برای که ما جعل حدیث رو از همون قرن اول هم داریم از همون قرن دوم هم داریم متاسفانه روایات مبتلا شدن به جهل فقی نقش شناسایی حدیث صحیح و انتخاب حدیث صحیح بوده در شیعه من حالا ساعت پیش به مناسبت درس تقول حدیث مطلبی گفتم برای دانشجو گفتم خب در شیعه روایات شیعه که گرفتار مسئله ای به نام تقیه هم بوده دیگه گاهی به خاطر که ائمه در شرایط تقیه بودن شیعیانشون در شرایط تقیه زندگی کردن مجبور بودن یه فتاوایی همسو با فقه اهل سنت هم بدن به دست ارثو از شاگردانشون در اون زمان هایی که واقعا شیعیان امنیت نداشتن متاسفانه حالا البته اگر در ها در شرایط اهم زندگی بکنن تقییه لازم نیست بکنن خب این وظیفه فقیه که بوده که بعد از برطرف شدن شرایط خوف و خطر به یه فتوای اصلی امام صادق اینه و این غیر از فتوایی که بر سبیل تقییه ایشون دادن پس فقیه هم در اون زمان قایدتا یه نقشی داشته یه جایگاهی داشته جایگاه فقیه چه در شیعه چه در اهل سنت عبارت از تعیین و شناسایی روایاتی که این روایات رو ایشون روایات صحیح میدانسته و در حقیقت شیخ صدوق شیخ صدوق در مقدمه کتاب فقیه و لا زرون که البته این کتاب بعدا به اختصال میگه من احضور الفقی ایشون در ابتدای کتابش در مقدمه کتابش میگوید من به شیوه بقیه محدثین عمل نمی کنم که در یه موضوعی هر حدیثی رو بیارم من فقط روایاتی می آورم که احکم و به صحتی به صحت اونها حجی میکنم و افتی بی بر پایه اون فتوا میدم و اعتقد انها حجتون بینی و بین الله و معتقد هستم که این روایت حجت بین من و بین خدای من در واقع هر حدیث رو نمیاره حالا ایشون با این قاطعیت گفته کلینی با چنین قاطعیتی نگفته جز اینکه ما میدونیم خب کلینی هم روایاتی رو که قبول داشته در فروع الکافی اوورده شیخ توسی هم در تحصیل و استفسار به همین شکل عمل کرده این کتاب ها نماننده فقه محصور البته قبل از این کتاب ها هم کتاب هایی بوده بعض از اونها به ما نرسیده متاسفانه در گذر زمان بسیار از کتاب ها از بیل رفته ولی کتاب که موجوده عبارت از این کتاب هاست فقه نیمه معصور مراد از فقه نیمه معصور چیه؟ در برابر فقه معصور ببینید فقه معصور عبارت از روایاتیه که این روایات با سلسل سند و انتصاب به معصوم این روایات نقل میشن که در این چهارتا کتابه اما فقه غیر معصور به این معنیه که من میام احادیث رو نگاه میکنم سندهاش رو کنار میذارم متن روایات رو میگیرم در جملات خودم تضمین میکنم مثلا فرص بفرمایی قالش شیخ المفید علما او ازابلغ الکر لمیونجس هشه شیخ المفید میگوید که اگر آب بعد کر برسه هیچ چیز نجسش نمیکنه. شما وقتی ظاهر رو نگاه میکنی فکر میکنید این فتوای شخصی شیخ المفیده ولی کسی که حدیث شناسه و تسلط حدیثی داره میگه این جنبه امام صادقه ایشون چون یک کتاب فقهی داره می برای مکلفین خودش دیگه قال صادقا و قال الباقراشو به کرده متن احادیث رو درش کرده در عبارات خودش به این گل فقه بیر مرسول. چون از یه طرف سند نداره از یک طرف اسناد به معصوم نشده ولی از طرف دیگه عبارات عبارات روایات که به اصطلاح تزمین شده یعنی کاشته شده در ظاهرا فتاوای فرعی من دو سه کتاب برای شما نام میبرم خوشبختانه این کتابات تا زمان ما موجوده میتونه که این کتابخونه مراجعه بفرمایید ببینید شیخ طوسی کتابی داره به نام نهایت و فی مجرد فقه و فرقا. این کتاب انهایت دقیقا با این ویژگی که گفتم برشته شده یعنی متن مسئله های شرعین روایات امن برای ظاهر رو که نگاه میکنی انشای شیخ توسیه انشا و عبارت پردازی از شیخ اغارات حدیث رو کشته در دل انشاء و عبارات خودش انهای توفی مجرد الفقه و الفتوه لذا امروز که کتاب انهای رو چاب کردن رو جمعه به جمله محطنهای حدیثی تا یک تو پاورقی یک منبع هذه رو ساعي کردم باش این کار شیخ توسیه اما شیخ صدوق شیخ صدوق دو تا کتاب داره یکی به نام مقنعه ال علی مقنعه, مقنعه. مقنعه کتابی متعلق به شیخ مفید ال یکی هم کتابی داره به نام ال هدای کتاب الهدای ایش فقه به معنای قرآنیه یعنی شما وقتی که به کتاب الهدای مراجعه کنید هم روایت اعتقادی کلامی داره هم روایات فقهی به معنای حلال و حرام و احکام دینی داره کتاب بس الهدای ایشون اما کتاب المغنی صرفاً فقهیه یعنی احکام شرعیه با مجرد کردن از سنده ها و غالباً بدون اسناد به معصومین هر دو کتاب المغنه و الهدایی چاپ شده جمله به جملش مستند شده به یه روایاتی که در کتابهای عدیسی موجوده من خودم به چنین فقهی لقب دادم فقه یه معصوم رو خب. همان میرسیم به دوره ای که حالا قبل از این برسیم به این نوره ببینید در اینجا هم جایبای حدیث محدوده در تشکیل چنین فقری یعنی در اینجا قلب فقر حدیث حالا یه وقتی تو حدیث رو به سراحت از خود امام واقع و امام نقل نقوم میکنی اینجا حدیث بودن این حجم فقری رو همه میفهمن دیگه یه وقتی نمیگی برای که مکلفین بخونن عمل شهری انجام بدن ولی اهل فرنی که می که اینجا متن روایات کاشته شده در عبارات یک فن. تا این که ما می به فقه استنباطی خب اولا فقه استنباطی یا فقه اجتهادی خب فقهی که فقه های عالم از قرن پنجم به بعد چه شیعه چه سنی کاملا متداول دیگه فقه استنباطی الان این رساله های عملیه ممکنه اکثر شما دیده باشید و در خانه ها تون این رساله های عملیه محصول فقه استنباطیه این رساله های عملی <تصفيق> ولی از رساله های عملیه که بگذاریم اگر بخوایم از نظر تاریخی برای شما بعض از مداره که فقه استنبادی رو مثلا المفسوت شیخ توسیب اولین کتاب فقه استنبادی بعد مثلاً می‌رسیم شراعی الاحکام مال محقق علمی. بعد می‌رسیم به لومعه بعد می‌رسیم به شرح دومعه لومعه مال شهید اول شرح لومعه مال شهید ثانی هایی ها این که مثلاً می‌رسیم به دوره مواسر کتاب جواهر الجوا... الجواهر و الفقه که مثلاً می‌گن شیخ محمد حسن نجفی معروف است به صاحب جواهر کتاب جواهر پنجاه جلد یعنی یکی از فقه های مفصلیه که در شیعه تحریف شد فتح های کتاب میتونیم اینجا نام ببریم چون که در اهل سنت هم ما میتونیم کتاب های زیادی رو نام ببنیم. از مقصود شیخ توصی رو نوشتم اولین کتاب دار فقه که میخوام بگیرم از این نوشتن اینه که شیخ توصی یه حلقه است، یه حلقه وصل یک پای شیخ توصی در دوره متقدمینه که در دوره متقدمین اصلا فقه معصور بوده یا فقر روایی بوده پای دیگر شیخ توسی در دوره متأخرین مترخترین. متأخرین یعنی در شیخ ایدوسی دقیقا حلقه وسطه حلقه وسطه دوره متقدمینه به دوره مترخترین چون از زمان شیخ توسی دانش های شیعی مخصوصاً دانش های شیعی یه تحولی بید کرده شیخ رو میگن اولین کتاب فقه استنبالتی رو بوشته و شیخ رو میگن اولین تفسیر اجتهادی شیعه رو به نام طبیان ما این مسئله که در باره فقه میگیم در آینده در باره تفسیر میگیم. میگیم در رو میگیم یعنی میگیم تا برنهای تفسیر هم کاملاً رواهی بود مفصلیم به این آن تفسیری یک آیه حدیث میخوندن تفسیر هم رواهی بود بعدا ما غالب تفسیر اجتهادی میشیم دوره تفسیر اجتهادی همین آقای شیخ توسی که اولین فتا با فتا نوشته اولین تفسیر اجتهادی رو نرشته در آرامان تفسیرهای رواهیش بنابرای تفسیر طبیان حالا چی میشه که ایشون از خوران خدمتون تفسیر کتاب المفسود رو نوشته کافی که شما مقدمه این کتاب رو بخورید شیخ توسی تو بغداد زندگی می کرده. بغداد محل برخورد علمای شیعه و سنی بوده در زمان بین علمای شیعه و علمای سنی یک سری رقابت های علمی و مذهبی وجود داشته برپایی این رقابت ها گاهی اوقات سنی ها شیعان رو مسخره می کردن می گفتن شما در فروات فقهی حکم ندارید شما در مسائل مستحدث و فروات فقهی حکم ندارید شما یه رشته حدیث دارید از علمتون و در جواب سوالات مردم و مسائل مردم فقط یه چند حدیث می خونید. شما اهل استنباد نیستید، اهل اجتهاد نیستید در فروعات فقهی که پیش میاد در مسائل مستعده است که پیش میاد شما ما حکم ندارید شیخ توسی کتاب المبسود رو نوشت اسم کتاب هم هست المبسود فی فقه الامامیه مبسود یعنی مفصل المبسود فی فقه الامامیه که بگوید ما در فروعات فقهی حکم داریم ما در مسائل مستهدست حکم داریم حالا چطوری ما در فروعات فقهی و مسائل مستهدست حکم داریم اینجا لازمی که من یکی دو تا محنا برای شما توضیح بده از بیانات امام صادق علیه السلام برای شما یکی دو تا مطلب عرض بکنند ببینید امام صادق علیه السلام با اینکه خود امام صادق روایات بسیار زیادی رو در اختیار شاگردانش قرار داد و بریزترین و بریسترین مسائل پاسخ مشخص می دادن و اصحاب ایشون سعی می کردن که این مسائل رو سبتش بکنن در اصول حدیثی و کتاب های حدیثی که بعدها ما یه مقرد شد تو کتاب تاریخ حدیث توضیح دادیم در این حال امام صادق می ما من شید الا او اصل فلم کتابه عدیس صنعت یعنی هیچ مسئله شرعی در هیچ زمانی پیش نمیاد مگر هیت ریشهی دارد یک اصلی دارد در کتاب و صنعت ولیکن لا تظنوه و حول رو بجاده کاری وقت نمیفهمند چیا نمیفهمن اونایی که این اصول دستشون نیست یا کسانی که این اصول دستش هست ولی اهل استنباط نیستن اونم با اهل استنباط باشیم به قول امروزی ها بتونه برداشت بکنه از یک <تصفيق> از یک حدیثی برداشت کنه ال کافی کتاب ال منبعی این هم. تو همین کتاب علم فرمودن کل و ام یعنی هر مسئله شرعی در هر زمانی مردودون علد کتابه وصل هر مسئله شرعی که پیش میاد شما سعی بکنید این مسئله شرعی رو ارجاعش بدید به یک اصل در کتاب یا در سنت پس که از پس که یکی از خاصیت های کتاب و سنت اینه که یک سری اصول یک سری مبانی در اختیار شما قرار ده. شما میتونید با کمک اون اصول و مبانی مسائل شرعی خودتون رو حلش بکنید. نقش حدیث در علم فقه نقش حدیث در علم فقه، اونها فقه استنباطی الان اینجا ما می‌خواییم نقش حدیث رو در علم فقه برای شما بیان بکنیم در علم فقه اونها فقه استنباطی اگر که ما نقش حدیث رو در علم فقه روایی بررسی کنیم اصلا حدیث میشه فقه فقه میشه حدیث ولی نقش حدیث در علم به فقه رو ما بررسی کنیم و به کتاب های اصول فقه مراجعه بکنیم در کتاب های اصول فقه گفته شده که ریشه احکام چار چیزه کتاب سنت عقل اجماع البته هم این رو تبقی اصول فقه شیعه رو دارم صحبت اصول فقه شیعه که احکام شرعی چهار طوری شدارم یکی کتاب دوم سنت سه بوم عقل چهار اجماعی از این چهار منبر چه کار که نباره از قرآن باشه؟ کلیات و در موارد بسیار محدود جزییات کتاب قالباً کلیاته موارد بسیار معدوم ممکنه یک مسئله شرعی رو قرآن کریم با جزئیاتش بیان کرده ماشه که حالا من مثال برات میزنم مثلا قرآن کریم میفرمایید عقیم و صلات عقیم و یک فرمان کلیه دیگه شما که با عقیم و صبح صبح درکت نماز نمیخونید مقروض سرکت نمیخونید برای که در حقیقت درکت یا سرکت نمیخونید طبق سنت پیغمبر عمل میکنی یه قرآن فرمان اقامه نماز رو به صورت کلی میده گاهیم بعضی از مسائل در کتاب به صورت جزئی بیان میشه حداقل ما معتقدیم که به صورت جزئی بیان میشه مثلا به نظر من آیه وضوح حکم وضوح و تیمم نسبتاً در قرآن دقیق بیان شده حالا ممکنه مسلمانان در تفسیر آیش اختلاف داشته باشند، ولی قرآن کردیم به ما می یا ایوه هم ادا قمتم الاس الصلاة فعاصلو وجوهكم و عیدیکم المرافق مرافق بعد می فرمه ومسهو و ارجلکم و به نظر ما آیه قرآن کریم در شستن صورت و دستها ها پا آرنج مفادش روشنه و در مسح پا مسح سر و دو پا مفادش روشنه این البته نظر شیعه است حالا اهل سنت این بر و سکم را عطف به وجوهكم میگیرن و قشون میشورن این بعد به اختلاف این دو تا مذهب در تفسیر این آیه شریفه الان من نمیخوام وارده این بشم که الان نظر صحیح فقهی مال است یا اهل سنت این الان من نمیخوام وارد بشم اما به نظر میاد که به اخره قران کریم حکم وزو و حکم تیمم رو حتی به صورت جزئی برای ما گفته که بعد اون فرماد فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاَنْ فَطَيَمَّمْ فا وَسَعِلًا فَایْدِه بَا فَمْسَهُو به وجوه کن وَایْدِهَ خُمْبِ و شاید بعض از احکام دیگر رو هم گفته باشه مثلا فرض کنید قرآن کریم حد روزه رو مشخص میکنه وَكُلُو و بود حتى يتبينا لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم امتصيام الى الليل اما اینکه دقیقا چه امور روزه را میشکنه یعنی مفطئات مفترات روزه به تفصیل در قرآن ذکر نشده این مفترات روزه رو ما از سنت در میاریم خب حالا میاییم توی سنت نقش حدیث رو در علم فقه به شکل استنباطی ما درداریم سنه تفاصیل مجملات قرآنی به اضافه اصول ویشها وقتی که به حدیث مراجعه می احادیثی که از طریق سنی داریم و اهل سنت بهش عمل میکنند، و از طریق شیعه وارد شده که شیعیان بهش عمل میکنند، ضمن که شیعیان به روایات اهل سنت هم مراجعه میکنند، خیلی اوقات به روایات صعیح بخاری سعی مسلم و ما مراجعه می یه به چیزهای خوبی پیدا می استناد می اینه بگم بکنم ما در واقع جایگاه حدیث در فقه استنقاتی رو به دو شکل می توانیم پیدا کنیم یک تفاصیل مجملات قرآنی خب احادیث فقهی که در اهل سنت و در شیعه وارد شده خیلی از این احادیث به صورت ریز تکالیف ما رو روشن میکنه یکی از ریزترین مثالهایی که من میتونم برای شما بزنم بحث شکیات نمازه حالا در رساله های عملیه شما میخونید اگر کسی بین دو و چهار شکر باید بنا رو بر دو بذاره سلام نمازش بده بعد بلند بشه بلند بشه دو رکعت نماز احتیاط بخونه اگر کسی شک کرد که سرکت خونده یا چار رکت خونده در نمازه چار رکتی سرکت بنا رو برس چار بیز داره، سه بیز داره، سلام بده براش یک رکت نمازه احتیاط بخونه اگر کسی شک بکنه بین یک و دو نمازش باطل میدونید چرا شک بین یک و دو نماز رو باطل میکنه برای شک بین دو تا بالا نماز و باطل نمیکنه، کنه الان سرش رو برای شما میگرد این اسرار تو روایات میدونید چرا دلیلش رو براتون میگه روایاتی داریم هم شیعه نقل میکنه هم سنی نقل میکنه اصل نماز اصل اصل اصل, اصل نماز که تشریعی میشه 5 تا دو بوده. اساس ذات نماز 5 تا دو بوده. به این میگن فرض الله. روایاتش تو شیعه تو کتاب کافی کلینی در اهل سنت برید مراجعه کنید سنی ها تو سنن بود ذات نماز که تشریع میشه از جانب پروردگار که تا دو بوده. رسول الله با اجازه ای که خدا بهشون میدن هفت رکت به نمازها اضافه کرده که این سه دو رکعتش به نمازهای ظهر و عصر و اشراس یک رکتش به نماز مغربه نماز صبح همون دراکتش رو گذشت سریش اون 5 تا از چون فرز الله صحب و شک بردار اون هفرکت که بهش میگن فرز و رسول شک و بردار هست یعنی اگر کسی تو به صحبت فرز رسول شک بکنه این درمون داره یه جوری میشه واقعا شکیات رو حل میشکرد بنابراین این مسائل شکیاتی که شما میخوند تو رساله های عمدیه همش پشت وانه های حدیثی داره اونم با این جزئیاتی که من دارم بهتون میگم. پس نه شهر در دو بستره یه تفاصیل مجموعات قرآنی دو اصول و ریشه ها اصول و ریشه هاش گرده بین حدیث امام صادق که می فرماید مامو شیه ام الا ولمو اصلون که کتاب و سنه بلا که نتبلغ و رجال کلوش این مردو دونه کتاب و سنه حالا من یکی دوتا اصل برای شما می ریستم که فردی ای بر اساس این اصل می کنه بده مراده ده. مثلا پیامبر لا ضرر زر بلا ضرارا فی یک گفت اصلی اگر یک اصل لا ضرر بلا ضرارا فی الاسلام همم هم قبول دارن که پیغمبر چه چیزی فرموده یعنی در اسلام ضرر و زیان معنی نمیده شما خود یه پروژه انجام بدید با بیندیشی که این پروژه و زیان هم برای خوده یا برای جامعه هست یا نه حضرت فرموندن لا زراره و لا زراره فر اسلام شهن صدور هم داره ها که برید نیام مخونید حضرت درخت سمارتت جندب رو که در یک زمین یه بنده خدایی بوده میگه از بیخ بکنید چون مایه یه مزاهمت و ذرعوضیان است لا ذرع و لا ذرع رفل اسلام یک اصله نقشه سنه ده در نفق حتی فقه استنباطی یک رشته اصولی تو روایات ما وجود داره که فقیه با کمک اون اصول میتونه فتواه بده همطور که در قرآن کریم یک رشته اصول وجود داره مثلا در باران می‌فرماید اوفو بلوگو این یک اصله حتا نزدیک لازره و لازره را رفت الاسلام باران می‌فرماید لا, تل... لا تلقو بایدیکم علت تحلو جند. یک اصله امام صادق فرمودند امام صادق اذا شککت تا و قدل یقین زمانی که شک کردی به حد اقل یقین خودت برگرد بنا را بر حد اقل یقین بذار مثلا اگر شما شک کردید که درکت خوندید یا سرکت تا اقلش درکتی که خوندی دیگه برای که یه پای شک تو دو هست یه پای شک تو سه هست دیگه فقط نو علم یقین اگر شک کردید که یک رکت خوندید یا درکت خوندید قدر متیقنش یک رکته میتونید بعض اوقات به شکاتون محل نگی دارید فب نو علم یک اصله فقه ها یک رشته اصول تو فقه استنباطی ها من دارم نقش حدیث رو در فقه استنباطی بررسی میکنم که به هر حال یکی از ابزارهای فقی در فتواهایی که میده از کنم حدیثه این حدیث فقی این حدیث رو به دو شکل در اختیار داره یک به شکل مواردی که مسائل شرکی با تفصیل بیان شده چی رهدر میگن اجتهاد در برابر نص جایز نیست اینه اگر در یک قضیه شاره رو گفته باشه فقیه میتونه در برابر حدیثی که سهیه و پاسخ مسئله از فتوا بده حدیث اما اونجایی که فقیه با مسئله برخورد میکنه که ظاهر جوابش رو در روایت نمیبینه باید ببینه که این مسئله نزدیکترین اصلش چه اصلیه؟ نزدیکترین اصلش یا در مرآن یا در سنت بر اساس مراجعه به اون اصل یه فتواهی که از اونم باز شیعیان یک حدیث دیگه از امام صادق روایت کنن که امام صادق فرموده: ای ان این نما علیمی ها ان نرقیه الیکم اصول و علیکم به تفرید وزیفه که اصول رو در اختیار شما قراره وظیفه شما استنباته شما باید بتونید از اصول بهره برداری بکنید استنبات بکنید بعد مثالی در این زمینه وجود داره که در کتاب های فقهی ما هم هست که زراره دستش زخف میشه و میاد به امام صادق میگه تکلیف من چیه من اگر آب بزنم به دستم دستم چرک میکنه حضرت فرمود حکم این مسئله و امصار اون از کتاب خدا فهمیده میشه مگر خدا نمیفرماد ما جعل علیکم فدین الدین ممحارچ خدا که سختی شما رو نمیخواد تو یه جوری وضو بگیر که به سختی نگفتی بعد اون فرماد علم سح علی المراره جریره‌ای که داری رو همون جریره مس بکش دست بکش رو همون جمیره. این اون خدمتی که دین به ما میکنه. عقلم که ما این نوشیم مقامش مقام تطبیقه. یعنی نقش عقل اینه که تشخیص بده. این فرع میخوره به این اصله. همین. تا بتونه اون حکم کلی رو بار بکنه بر این مستقل. و الا ما حکم شرعی عقلی نخواهیم داشت. اجماع هم که هم شیعه بهش معتقده هم سنیا بهش معتقده به وانه یک روش برای یک کشف حکم فقهی امروز دیگه من وقت ندارم که برای شما توضیح بدم. خیلی هم از شبت جزء درست ما نیست به باور شیعه اجماعی حجته که کاشف از رأی معصوم که بهش میگن اجماع دخولی یعنی فرض شیعه برای که حکم اجماعی حکمیه که مورد امضای امام معصوم قرار میگیره دقت کنید یعنی بازگشت اجماع در شیعه به حدیث معصومه القایده خب من امروز سعی کردم راجع به نقش حدیث در علم فقه توضیح بدم آن چه را که گفتم پیاده کردم بر مذهب شیعه این بحث ما یه بخشیش میمونه که ما یه نگاهیم بکنیم به نقش احادیث در مذاهب فقهی اهل سنت ان شاء الله این بخش رو ما در جلسه بعد خدمتتون بود و صلی الله علی سیدنا محمد و آل فرهم الله اما